من از دوران کودکی شروع اشتیاق فراوانی داشتم در فهم و در واقع کشف چگونگی عالم هستی و اینکه ما اینجا چیکار میکنیم از دوران کودکی به طرز عجیب غریبی فکر منو به خودش مشغول میکند و تا جایی که حتی در سنین جوانی چندین بار میرم که تا تعادل روانی من به هم بخوره که ما اینجا چیکار میکنیم چرا اومدیم اینجا چرا هستی اینقدر عظیمه و بحث خالق و مخلوق و اینها که دیگه طبیعتا همیشه فکر بشر رو به خودش مشغول میکرد به دنبال وسعت گرفتن این اشتیاق من به خودم اومدم در سن 18 سالگی حدوداً دیدم که اتصالی برای من به وجود اومد الان 50 و حالا میره که 50 به یک سال نزدیک بشه 31 دو سال از این ماجرا میگذره و من اولین بار در اونجا مفهوم اتصال رو متوجه شدم و بعدش اون آگاهی می موضوع دیگر رو هم متوجه شدم و اون امینه که نباید مطالعه کنم توجه میکنید نقطه مهم اینه که نباید مطالعه در این زمینه بکنم. چرا اگر من مطالعه بکنم؟ اطلاعاتی که میاد ممکنه منو دچار شک بکنه که اینو نکنه تو فلان کتاب خونده باشم اینو نکنه در فلان مسئله باشه. ولی چون این زمینه رو من بکر باقی گذاشتم، بعد از اون هر چی رو که در واقع پیدا کردم دیدم که متعلق به وصلا یا به یافته های خودم میشه. و اگر من تحت تاثیر مطالعات جانبی قرار می گرفتم یا می اومدم رشته های مربوط رو فرا دنبال میکردم و مطالعه میکردم دچار سردرگمی میشدم و شاید اون مسئله اصلی به طرز، شاید قابل چشم، چشمیری تتو شعا قرار می گرفت و به هر حال یک موضوع هست اینه که فرزاً یه آهنگساز اگر بخواد یک آهنگی رو به ساز که ماندگار باشه باید تمام اطلاعات رو بذاره کنار تمام دستگاه ها و بوشه ها و اینها رو بذاره کنار درسته بلد مسلطه میتونه بنویسه ولی باید ببینید دلش چی میگه بعد از اینکه دلش چه حرفی داره اونو بنیمیسته ولی اگه بخواهد به گوشه ها و دستگاه ها نگاه بکنه و بگه این, بگه این بازی کنن اون بازی کنم این کار ماندگار نیست این ایک اصل کلیست در دنیای ادراک و اشراق و بعد از اون کسب تجارب متعدد رو در زمینه کمال و قدرت و بعد متوجه شدم که اون چیزی که بهش اتصال صورت میگیره خودش دو شبکه است یا شبکه مثبت یا شبکیه منفی شبکیه مثبت کارش ارائه ادراکاتی است که منجر به درک کمال میشه مثل درک ان درک جمال یار درک وحدت عالم هستی و درک هدفمندی جهان هستی درک حضور و سایر ادراکاتی که گفته میشه ما ب... یک ظاهر داریم یک باطن داریم عنوان با مثال وقتی که ما بگیم اعتصم و حبل الله جمیعن و لا و اینه که به ریسمان الهی به حبل الله به ریسمان الهی چنگ بندازید این یه ظاهر داره و یک, یک باطن داره ظاهرش اینو که میخونیم که بله به این حبر الله چنگ بندازین و به عالم کسرت نرید حالا عالم وحدت چیه؟ آلم کسرت چیه؟ جای خودش باطنش اتصاله این اتصال چیزی نیست که در جایی به شما بدن توجه فرمودین این اتصال در چیزی نیست که شما بگید من برم بلان جا اتصال رو پیدا کنم و ماجره اینه که در هر کجایی روی بحث کتاب و مطلب و نوشته کار میکنن این پله پله عقله با معرفتش با اتصالش دو تا ماجرای جداگان است کاملا جداگان است روزی آسمانی انسان شامل همین ادراکات آسمانی است شامل آگاهی هاست شامل روشن شدگی هاست که لازمه از اونها انفاق بشه و لازمه که در اختیار همه قرار بگیره قبل از اون این مفهوم به طور غیرمستقیم باز شده بود و اینجا این سوال بود که برای خودت میخوای یا برای همه میخوای و من جوابم این بود که برای همه میخوام و بلافاصله از اون به بعد آگاهی های مرتبط با این قضیه اتصال های مرتبط با این قضیه خیر از اون موارد فردی بود اضافه شد و این موضوع به صورت امروزیش شروع شد که در واقع تفیز به دیگران و از اون هم باز هم به دیگران و در واقع این به صورت درخت شاخه های یک درخت بتونه رشد بکنه ادامه پیدا کرد را بازه برای جمع طبق یک قانون همین قانون اعتصام و حبل لا جمع و لا تفرق و طبق این قانون و برای فرد هم طبق قانون ادعونی است از جبلکون برای فرد را باز منطقه اشتیاغه بسیار زیادی میخواد برای جمع هم را باز از اتصال خاص خودش یه اصل کلی ما داریم و اونم اینه که پرواز را به خاطر داشته باش پرنده مردن نیست بحث محو و فنا داریم بحث حث داریم افراد مهم نیستن یکی از اصولی که ما داریم که در اساس ناممون هست اینه که اندیشه مهمه و نه صاحب اندیشه و خودمون هم بایستی الگوی این قضیه در واقع باشیم و همه افراد در واقع تعوداتی که دارن در این زمینه هست که ما صرفا یک معرفی کننده هستیم بس و پرواز را به خاطر داشته باش پرنده مردنیست ببینید الان مولانا بین ما نیست حافظ بین ما نیست امیر علی السلام بین ما نیستند اما چه چیزی از اونها بین ماست داستان پرواز هاست که پین ماست در قرب گفتی میشه چی میگه در شرق میگن کی میگه؟ این اختلاف بزرگی در تفکر غرب و شرق است به طور کلی شرق از هر جاش بریم به هر جاش کی میگه؟ و میگه گفتن کی میگه؟ بقیه ماجراش حله اما در غرب اینه که چی میگه؟ مهم نیست چه کسی میگه مهم اینه که اون صحبت چه چیزی چه پیامی برای انسان داره از اون در جهت تعالی یک جامعه چه استفاده میشه کرد ما باید بدون توجه به افراد افکار رو بررسی کنیم اگه به درد میخوره مورد استفاده قرار بدیم اگه به درد نمیخوره بذاریمش کنار و تو 100 تا فکری رو که بررسی کنیم، تو 1000 تا فکر رو بررسی کنیم 999 تاشو بذاریم کنار شاید یکیش به درد خورد این چیزی است که ما در فرهنگ شرق باید به وجود بیاریم و اونم اهمیت اندیشه است مولانا میگه من اگر خرابم هستم سخن ثواب میگه. حافظ میگه هر چند غرق بحر گناه همزه سر جهت تا آشنای عشق شدم زه اهل رحمت هم ببینید اینا خودشونو ببینید به شکلهایی بردن در هاشیه اونجا اهل عشق و اهل رحمت رو پیش میکشه و توجه ما رو معدوب میکنند به اینه که ببین مطلب چی دوباره ما خب در شرق یکی از کارهایی که صورت میگیره اینی که فرزند ممکن است جلسات تشکیل بشه ساعت ها راجب مولانا صحبت بشه مولانا چنین بود مولانا چنان بود حافظ ال بود بل بود نیپورم سعدی عطار این کاریه که خوب از ازمون برمیاد یعنی یه فرهنگ ای یعنی که به اصطلاح قلوب راجب افراد اما تو تا خط از و کشف رمز توجه میکنید یا اون کشف رمزی که باید رو آگاهیاشون صورت بگیره از کشورهای دیگه میان مثلا از ممالک دیگه حافظ چناسای شاید داشته باشیم این خودمون جلوتر باشن مولانا شناسای داشته باشیم از خودمون جلوتر باشن بنابراین این فرهنگ رو می خواهیم در واقع تطوش آقارا بیدیم فرهنگ مثلا و راجب افراد صحبت کردن و راجب این مسئله باید جای خودش رو به صحبت راجب آگایی ها بده زمینه اینه که کارشناس ها بیان پای صحبت افرادی که تج به صورت تجربی به چیزهایی رسیدن این هم خودش یک توفیق بزرگی بوده که پیش اومده شاید هم داشته ولی به هر حال الان این زمینه رو ما مساعد می‌بینیم که کارشناسان فن آمادگی این رو دارن که بشینن پای صحبتهای افرادی که بس خودشون به صورت تجربی اومدن جورو نه آکادمیک.